الله مرحوم شیخ بها فرمودند که کتاب من مشتمل بر پنج حدیقه است که این پنج حدیقه را که شما مطالعه کنید کتاب ما به انتها خواهد رسید حدیقه اولش رو ما شروع بکنیم اله حدیقه اولا اله حدیقه اولا فی ما عرد تو تقدیمه میگه حدیقه اولا در خصوص چیزهایی است که عرد تو تقدیمه خواستم من که مقدمشون کنیم اراده کردم تقدیم آنها مقدم قرار دادنشون سلام پس حدیقه اول در واقع به منزله چی حساب میشه؟ مقدمه حساب میشه مقدمه کتاب قررتون قرره عبارت هست در نغت به سفیدی که در پیشانی اسب پیدا میشه یک اسبی باشه رنگش سرخ یا سیاه و یک خال سفیدی در پیشانی داشته باشه اونو بهش میگن چی؟ قره این معنای اولی و لغت اصلی قره است اما قره در معانی متعددی به کار میره من جملش اول هر چیز، اول هرچیز رو بهش میگن چی؟ قرنه. مشخص شد اصل هر چیز یعنی اون نقطه بقول معرو اساسی هر چیز رو بهش میگن چی؟ قورنه مشخص اینجا ظاهر قضیه اینه که قره یعنی همون اول بحث اول این اولین چیزی که قصد مقدم شدنش رو دارم و براتون میگم ان نحو تعریف علم نحو است که نقش چیست میگه انه و علم نه این تعریف رو تو ادای ان میگه و علم به قوانین الفاظ عرب علمی است به قانونهای الفاظ عرب اسم و فعل و حرف یک سری قوانینی دارند این قوانین تحت مجموعه ای جمع شده به اسم علمون به قوانین الفاظ عرب خب میگیم صرف هم علمون به قوانین الفاظ عرب معانی و بیان و بدی هم علمون به قوانین الفاظ عرب همه اینها علم است به قوانین الفاظ عرب فرق نمی کنه میگه نه حیثیتش فرق می کنه در صرف ما میگیم علمون به قوانین الفاظ العرب من حیث صحت اطلاع، از جهت صحت و اطلاع. در اینجا میگیم علمون به قوانین الفاظ العرب من حیث ال اعراب ول بنا، از جهت اعراب و بنا بزمی کنیم پس بنابراین علمون به قوانین الفاظ العرب من حیصل اعرابه ول بناه جهت این این کلمه مورب است چه اعرابی دارد؟ مبنیست، مبنی بر چهاری که علمی که متکفل و به افدگیر این عمل باشد علمه؟ نه فایده علم نفجیه و فایدتهو حفظ لسان انل خط افل مغال مغال مستر میمیه یعنی گفتار فائده علم نه حفظ کردن زبان است از خطا و کجروی در گفتار انسان خطایی در گفتار نمی کنه البته به شرط مرآ اگر انسان قواید نفر رو مراعات کند هر چرا که اراده کند بگوید با الفاظ صحیح میگه با محتوی اون کلام کاری نداری ما محتویش جای خودشه محتواش ممکنه کفریات باشه ولی همون کفریات رو با قوانین صحیح لفظی عدا میکنه حفظ و عن اندخطه موضوع علم نفر چیه؟ میگه موضوع رو ال و مل کلام موضوع علم نحو هم کلمه هست و کلام درست شو حالا کلمه رو میگم توضیح بده میگه چارج فعلی کلمتو لفظ و. کلمه لفظ است از دهان خارج میشه معتمد بر مخرج فن موضوع اون وضع شده یعنی موضوع ل معنا دیگه چیزی رو که وز میکنن بلا چی وز میکنن؟ که تو, تو کتاب اداعی خوندیم وزعل معنن وزعل معنن یعنی همین موضوع لفظون موضوع مفردون مفرد هم هست جمله مفرد. و هیه اسمون و فعلون و هر این اسم است و فعل هست و هر که عدلتش نه همونجا برای تو وهم کردیم به چه دلیلی ستاست گفتیم به حکم نقل به حکم عقل و به حکم استقرار. ولی کلام حالا کلام چیه ؟ میگه این هم اما مفید به اسناد تام اما لفظیه که مفید است با اسنااد تام می درش هست اس ف به فاعدفعل به ناع خبر به مرتدا، اسناد یا مبتدا وصفی بخواهیم اینا اسناد اسناد تام یعنی تشکیل چی میده جمله میده تشکیل جمله لفظون مفیدون به اسناد پس با این غیر بلسنادم به ما فهمون که اسناد اسناد تام باید باشه اسناد ناقص مورد نظر نیست اسناد ناقص مثل چی مثل مثلا فرض کنید مستر با فایلش مستر با فایل خودش تشکیل جمله اسم فایلی با زمیر و حوهی در او میشه اسم فایل و فایل تشکیل جمله هر جایی که جمله تشکیل بشه یعنی کلام گسه و سکوت تشکیل بشه لفظ و مفیدون به دستان ولی اسمه یا آتی فی اسمین یا ولایتا عتا الافی اسم اونم همه جو نداری خب حالا اگه لا یتا باشه یعنی لا یومچه تا لا یتا اتا الا فی اسمه یعنی لا یمکن و الکلام الا فی اسمه <تصفح> کلام نمیشه مگر در دو اسم لا هم باشه که معلومه دیگه لا رو بلدی لا یتی چی؟ نمی آید نمی آید کلام مگر در بین دو اسم مثل زیدون، قائمان یا بین فعلن و اسم مثل چی؟ زره و اما بین فعلن و فیلن امکان؟ ندارد. چرا؟ چون فعل نمیتونه مسندان علیف آن یکی از ارکان کلام مسندان علیف بودنه و فعل قادر به مسندان علیف شدن تمام شد. قرره کلام تمام حالا میرسیم به ایزاه ایزاه اوزه یوزه ایزاه ایزاه یعنی چی؟ یعنی یه کلام مجملی رو سابق گفتیم الان چه میکنیم؟ توضیحش میدیم تفصیلش میدیم واضحش میکنیم که بشنسیم حالا ما چیچی رو سابق گفتیم که مهمه گفتیم کلمه تقسیم میشه به اسم و فعلا حرف همین فقط اسماشون گفتیم اسم و فعلا حرف توضیح ندادیم که اینا چیه؟ تو توی این ایزاه ابهام اون جمله بالامون رو بردرفتیم یعنی تا شما بخواهد سوال کنید اسم چیه ما براتون بکنید ایزا هون الاسم و کلمتون الاسم یعنی همون اسم بالایی که گفتیم اون اسمی که در بالا نام بردیم کلمتون کلمه است که معناها مستقلن، معناش مستقل ها یعنی خودش بی نفسه دارای است، مثل حرف نیستش که در زمن ما قبل و ما بعدش هم معناها مستقل غیر و مقترن این به عهد لزمنت سلاسه مقترن و نزدیک به یکی از زمانهای سگانه مازی حال استقبال چه خب این تعریف اسم یختستو یعنی علامتش به ادایه میخوندیم علامتهای اسم چیه حالا میخونیم آه. و یختستو بلجنب و مختص می شود به چی؟ به جر و یختص و به جر یختص و فایلش که؟ اسم اس مختص می شود به جر این کلمه یختسو و اختص رو اینجور مواقع برعکس به کار می برن. علوی این عبارت یختص جر یعنی اسم مختص می شود به جر معناش یعنی چی معناش یعنی جر مختص به اسمه نه اسم مختص به جره اسم اگر مختص به جر باشه به مجبور شدن باشه یعنی دیگه مرفوع منصوب نمیشه. نمیشه ولی در صورتی که ها عکس اونی که مختص است به اسم جر است یعنی جر دیگه در غیر اسم پیدا لذا این ماده رو یاد بگیرید این ماده رو برعکس به کار میبرم یعنی اصطلاحشون این طور شده که تو کتب ادبی میگن یختسو به جر در صورتی که چی بعد بگن یختسو جر رو به اسم جر مختص به اسم آه. توی حتی کتاب سیوتی هم همین میده میگه ول اسمو قدخص سبب جره ول اسمو قدخص سبب بن جره یعنی چی اسم اختصاص داده شده به مجرور شدن. در صورت که اسم اختصاص داده شده به مجرور شده یا مجرور شده اختصاص داده شده به اسم میگه ول اسمو قدخص سبب جره کما قدخص سبب فعلو بن ینجزبا میبینی اونجا هم این مطلب رو عکس بده و یختست و به جنر مجرور شدن از خصوصیات اسمه و ندائه و منادا شدن جنر و ندائه مسترن منادا شدن و یختست و به لام منظور از لام یعنی چی؟ الف و لام الف لام از خصوصیات اسمه و به لام و تنوینه و تنوین هم از خصوصیات اسمه و تصنیت ول جمع تصنیه و جمع بسته شدن هم از خصوصیات اسمه فلم تصنیه و جمع نداره و اگه یزربانه زربا میبینیم در واقع اونجا چی تصنیه و جمع بسته شده؟ فایلش خود فلم ول فعلو یکی از خصوصیات اصلی اسم رو که میتونست نام ببره و اونجا توی هدایه نام برده بوده اینجا نیست مصندان علی شدنه مصندان علی شدن هم از خصوصیات اسمه اونه. ولفه فعل چیه؟ تعریف کن بیگه چهش ولفه رو کلمتون میگه فعل هم کلمه ایست معناها مستقلوند معناش مستقله قطل همینگی یعنی با ما قبل و ما بعد کاری نداره خودش به تنهایی صاحب معنا نیست معناها مستقل موقترن اون به ها موقترن است به یکی از این سه زمانی که زمان یکی از اعضاء ف باز این یختس سبل قد قد مختص به این است قد مختص است به فعل و هر کجایی که در آیت علامت فعل است علامت هست برای که و نون و و یکی از نون و تأكید. یکی نون یا از خصوصیات حرف چیه میگه ول حرف مافکر کلمه ای نیست، معناها غیر مستقل، معناش مستقل نیست. مثلا من میگم من، چون نمی‌دونید ابتدای قایته یا من تعلیلی یا من, هست. شما شخص. من. به زادی است، یکش مشخص می‌نیم. و یادی داشت تو جمله، تا گذشتید تو جمله میگید که آخرت تو مند در آهنگیها، اینجا من من دعوی می‌کنم. سرتو من در بستری داری، من ابرویی دارم. قص و معناها غیر مستقل نه ولا موقت به عهدها و موقت به یکی از این زمان ها هم مشخص حالا این حرفو چطور بشناسیم میگه علائم های اسم و مصدرش در بیاد در نمیاد علائم های فعل و مصدرش در بیاد در نمیاد پس معلوم میشه این چیه و یو عارف به عدم قبول شئ من خواص اخوی و شناخته می شود به عدم قبول کردنش چیزی از خواص این دو نظیرش اسمو چیزی از این دو نظیر رو قبول چود بعد میگه تقسیم یعنی ما یه چیزی گفتیم تو کلام سابقمون محبسنه یعنی قابل چیه تقسیمه اینجا میخوایم چه بش بکنیم؟ تقسیمش حالا میرین چه مجملی بوده که میشده تقسیم کنیم میگه ها همون اسمه میگه همون اسم رو ما میتونیم چیکارش کنیم تقسیمش کنیم اسم به دن اعتبارات مختلف تقسیمات گنابونی در حالا یکی یکی میکنم عل اسمو ان وضع ال اسم اسم اگر وضع شده باشه نهاده شده باشه علم قرار داده شده باشه برای چی ذاتی وضع شده باشه برای ذاتی یه چیزی که انسان می قابل لام است با هواس انسانی اسم زاد اسم جوسه. این واسه عده زدهن فر اسم اینه مثل اسم عین بیشتر میگن اسم عین عین اصلا خودش یعنی زاد اسم ذات کزید زای الان عالم می‌بینه دیگه انسان نمی‌بیندش آه وجود خارجی داره خلاصه اونی که انسان می‌تونه با یکی از هواس 5 گانش درکش بکنه بیش میگن اسم اسم این وزه الزاتن فا اسم و معنی کسی اول حدسن یا اگه وضع شده باشه برای یک معنای مستری یه عملی رو نشون بده یه حدسی رو نشون بده یه کاری رو نشون بده اول حدسن فا اسم و معنا. به این میگن چی؟ اسم معنی که خودش به خارش به تنهایی وجود نداره در ضمن یک اسم ذات به اسم و معنا جزر بزن زرد در زبر زاربه که به مثل ال ماستند جزر به او لمنسوب الیه حدس لمنسوب اطراس به جای حدس الوز علی ذات الوز علی حدسن کاری او لمنسوب الیه حدس یا برای ل منصوبن الای اون منصوبه یعنی ل اسم منصوبه ل شیء منصوبه وضع شده اون اسم برای شی ای که منصوبن الای هی نسبت داده شده به سوی او چی؟ این اون چی این حدثن نائب فاعل و منصوبه که اسم یا اسم ما وضع شده برای چیزی که نسبت داده شده به اون چیز حدسی یعنی مثلا هم فرض کنید که آقای بیرون هست کتک هم زده آه؟ ما یه حدسی رو به این شی نسبت میدیم حدس زدن رو به این شی و میگیم به اون آقا چی؟ زارب زارب یعنی یک مرد زننده یک مردش یعنی همون شی این شیع منصوب نلعیه هده است که زنندگی به سوی او چی شده نسبت نمیشه اول منصوب نلعیه هده است اینه بشه میگن فموشتب کن بشه میگن اسم. موشتب حالا اگه یه هده رو بهش نسبت ندادیم بشه اسم جامعه فموشتب کن پس اسم با یک تقسیم تقسیم به چی شد سه دسته یک اسم معناه دو اسم زاد سه اسم عیزن عیزن مفعول و مطلقه یعنی آزا عیزن آزا یعیزو عیزن آزا یعیزو عیزن یعیزو فعله مزارش یعنی رجوعن عیزن یعنی چی؟ رجوهن رجوهن یعنی چی؟ یعنی نعیز و عیزن یعنی رجوع میکنیم یک رجوع دیگر یعنی الان بحثمون تو چی بود؟ تقسیم عیزم باز برگردیم به تقسیم عیزم یعنی این در واقع عیزن یعنی باز باز که تو فارسی میگیم باز یعنی چی؟ یعنی دوباره بر میگردیم به بحث تقسیم عیزم ان وظا لشاین این به اینه یعنی ان وظا اهمون اگر وض شده اسون اس لشاین این به اینه به اینه یعنی معینان. شاین معینان. میگه اگر وض شده اون اسم برای شیءی ای به اینه یعنی شیءی ای معین. برای یه چیز معین وض شده و ارفت ون به اینه اسم میگه انس به کَزَید مستمر. برزنیست، وعد شده برای شیء معین. حالا اون شیء معینت منم علم باشه. علم مثال زاد. میتونی زمیر مثال بزنی. میتونی اسم موصولات مثال بزنی. زمایر اسم اشاره وقتی میگه کزید ور رجل. ها؟ معرفه بالف با لام. وذا اسم اشاره هاذا. والذی محصول و هو زمین و المضافه الى اهده ها و یکی هم اسمی که اضافه شده باشه به یکی از این ها از این بالایی ها اهده ها یعنی یکی از این تا اونم اضافهش اضافه چی باشه؟ معنوی باشه اضافه از اون دو قسم بود اضافه لفظی اضافه معنوی اضافه لفظی فقط مفید چی بود؟ تخفیف و اضافه معنوی مفید تعریف یا مفید تخصیص بود حالا اینجا چون مضافونه معرفه است میشه مفید تعریف میگه به شده اینکه یک اسم به اینها اضافه بشه و نو اضافه اضافه معنوی بشه اضافه لفظی نبشه الان مثلا غلام اگه به زید اضافه شه بگیم قلام و زیدن غلام میشه چی؟ معرفه اضافه ش اضافه اضافه معنایی است. اما اگر گفتم آن زار با زیدن علانه، مفید این زاره دیگر از زید کسب تعریف نمیکنه بلکه کسب چی کرده، تخفیف کرده. یعنی زار بون فقط تن بینش افتاد. و المضاف إلى آهدها معنی، و به بندا، و یکی هم معرفی بنداست. مثلا راجع نکردنی است. ولی یه مرد اینجا وایستده میشه نمیدونیم میگیم یا رجل یا رجل تعال ای آقا بیا یا رجل تعال این یا رجل یا رجلل دیگه این منادای مبنی بر زم منادای نکره مقصوده این معرفه است ای آقا یعنی با تو هم با کسی دیگه محرف. مشخصه و معرف و به ندا اینها اقسام معرفه است درست شد؟ که البته در معرف به نداش بحثه معرف به نداش جزء معارف فقط منباب با که مشخص میشه جزء معارف ولی جزء معارف به حسابش نمیاد. و ایلا فنکرتون و ایلا یعنی چی؟ و ایلم یو زهلشه این به اگر وزن نشده باشه برای یک شی به برای شیع خاصی نیست و انلم یوزر لشیعن بین فنکراتون یعنی فقابنکراتون این اسمیشه چی اسمه؟ نکراتون رجو، تو رجال ها کتاب این ها اسماه حالا دیگاه کنید یه مطلبی دو خدمتون ارز کنیم معارف در بین خودشون رتبه دارند معارف در بین خودشون دارای رتبه هستند یعنی بعضشون اعرفتر از بعضی دیگره مثلا اولین قسم معارف که از همه اعرف است زمائر است زمائر از همه چیه معرفه داره ضمیر چند قسمه سه قسم متکلم مخاطب مقایم. باز خود زمیر در بین خودش متکلمش معرفه تر است از مخاطبش و مخاطبش معرفه تر است مقایبش پس اولین قسم معارف چی شد؟ زمیر شد اونم از متکلم و مخاطب و مقایم تشمیر شد دومین قسم معارف که یکم پایینتر علم است مثل زیب سبومین قسم زماعیر اسم اشاره است خوب یاد نگیری دار لازم شد سبومین قسم اسم اشاره است چارومی و پنجومی دوتا در یه رتبند معرف به علفلام و موصول این دوتا از نظر معرفگی چی در یه رتبند جفتشون در رتبه چندومن چارومی بعد مضاف مضاف به هر یک از این معارف مضاف به هر یک از این معارف در رتبه مضاف الی هست مثلا مضاف بعدم در چه رتبه‌ای علم مضاف به موصول در چه رتبه‌ای موصول مضاف به هر یک از اینها در رتبه مضاف هست مگر مگر مضافه به زمیر مگر اونی که اضافه میشه به زمیر که در حکم علم است، در رتبه علم است. مگر مضافه به زمیر که در رتبه علم است. دقیق کرده چی گفتم یا نه؟ آه. ایشون تو این عبارتی که نوشته معارف رو رده هم درست بیان بگیر نکرد اول زید بعد الرجل بعد زا بعد اللذیب بعد حوله و فلا دستوی که این نکات رو اگر انسان مراعات بکنه بسیار مکاته دقیقیه و باید به این شده خب عیزن عیزن یعنی چی باز؟ مزید. یعنی بازم برگردیم به همین بحثی که داشتیم عیزن این وجوده فیهه علامتو تنیست اگر در یک اسم علامت تعلیقی پیدا بشه، آه، ولو تقدیرن، ولو اینکه اون علامت تعلیقی در لفظ وجود نداره در تقدیر هست، یه نشون می‌ده معلم نس. و نارن، ناق علامت تعلیقیش چیه؟ ظاهر اونها. نار علامت تعلیقیش چیه؟ تقدیری. ولی هر دو مهندس هر دو چی هم مهنس. حالا از کجا میفهمیم نار مهندسه؟ طریقه برای شناختن اینکه این کلمه مهندس است زیاده مثلا یکی اینکه اسم اسم ای که بهش اشاره میکنه مهندس بیاره مثلا هازهی جهنمه هاذی جهنما شما از هاذی میفهمید که جهنم چیه؟ آلیس دومیش ضمیری که بهش برمیگرده ضمیر بر برمیگرده. ضمیری بر که بهش برمیگرده ضمیر چی میاره میگرده؟ مؤنث می سومیش فعلی که براش بیاریم فعل مؤنث میاد. مثل از ها زلزلت ارز و زلزاله ها زلزاله ها پای زمیر بهش برمیگن از او من هم زلزلت چی داره دو, دو, دو دلیل میشونی که این عرض چیه مثل نار هست،, هست دلیل بعدی که داریم که مهمتر هم هست اینه که اگه مسققر ببندیم اون تا بهش چیه برمیگن نار مهنسش میشه چی؟ نوویره نار میشه؟ نوویره و نوایره استعمالش در بین عرب ها هم از اسمم میگذره مالی که ابن نوویره از شوهرهای و عجواد عربی پس ببینید راه برای شناختن معنس مثلا نار جمعش میشه چی؟ نیران نار میشه چی؟ نیران حالا اگه شما بخواید بگی سه تا آتش در عدد مثلا چیه؟ مشخص میشه چون مفردش محننسه عددش چی میاد؟ مزرکه و هم موارده دیگه یعنی راه برای شناختن اینکه این در تقدیر مهند نسس چیه؟ یکی از همین راه ها کفایت میکنه دوتش کفایت دیگه ما اگه میخواستیم میشه از این هم پس این وجود دفیه علامت و تنیز ولو تقدیرن که ناغتن و نار البته بین ناغه و نار فرقه ناغه چیه؟ شطور ماده اما نار چی آتش هر دو مهندس اما یکیش مهندس حقیقیست و یکیش مهندس مجازی. مجازیست مهندس حقیقی اونیه که در مقابلش نر وجود داره یعنی جنس مخالف وجود داره اما مهندس مجازی اونیه که فقط اعتبار تنیست درشد و الله و منوسیت درش که ناقتن و نا. دوتا مثال زده این نکته اینوش میگهن محمدست و الا و الا یعنی چی؟ یعنی اگر درش علامت تحنیس بیرا نشود. چه ظاهر چه تغییر علامت تحنیس نداره و الا فا مذک کرد اینوش یا مذک کرد مثل جملون جمل چطور نه درسته؟ و ماهون بزن علامت تحنیس توش؟ نیست نه ظاهرن نه باطنن. نه جمل ما موزک مشخصه فمزجد. حالا مخواد همون مهندس حقیقی و مهندس مجازی رو گیرم میگه ول مهندس رو امکانه ده میگه مهندس اگر برای او فرج باشه یعنی آلت مادینگی اگر باشد معنث امکان له فجن ف حقیقیه این مؤنث مؤنث حقیقی است و الا یعنی نه اگر آلت مادی نداره مثل مثلا خوشی فقط اعتبار تانیس درش شده و الا لفظیه اینو بهش میگم مؤنث مؤنث چی لفظی مؤنث حقیقی نیست لفظی میگم مجازی هستند تقسیمون آخر تقسیمون آخر یک تقسیم دیگر یعنی اون تقسیم تموم شد تقسیم چی بود؟ اسم این تقسیمون آخر مالی کیه؟ فعل تقسیمون آخر الفعلو اینقه ترنه به زمان سابق وزعن فمازه فعل اگر مقترن باشد به زمان سابق زمان چی؟ گذشته وزعن یعنی در اصل وزعش زمانش گذشته نه اینکه که الان آرزهی برش آرز شده و زمان گذشتره مثلا با این قید وزن اگه گفتی چی رو خارش کرده؟ مثل لم لمیزرب از, از نظر ما فعل ماضیه یا فعل مزاره؟ فعل مزاره ولی اگه تعریف این باشه فعل ماضی آن است که به زمان ماضی دلالت کنه. خب اون موقع لمیزره ما هم باید بگیم چیه است. ولی ما میگیم فعل ماضی اونیه که به گذشته دلالت میکنن و این گذشته دلالت کردنش بر اثر آرزهی نیست وضعیه یعنی اولا و به ذات این بر گذشته دلالت میکنه. این وضعا برای خالش کردنه این اخترنه به زمانن سابقن وزن فمازن یک چنین فعلی رو بهش میگم فعله ماز. و یختستو به لحوق اهدت تا آتل لهوق یعنی چی؟ از تحچست بیدن به یه چیزی از اون طرف دخول یعنی چی؟ از این طرف افلش. میگه و مختص از فعل مزاره به لحوق اینها یعنی در واقع لحوق منخفته مختص از به و لاحق شدن یکی از تا چهار تا کدوم چهار تا داشتی؟ زرب زرب تا داشتیم ضرب تو ضرب ته ضرب ضربت چهار تا تا داریم دیگه تو مارس یکی از این چهار تا تا میتونه بهش بچسبه تو،, تو تو تو، تای ساکنه هر کدومش بچسبه به یه چیزی بیان کننده چیه اینکه او مارس و یختص توی فیل مازی به لاقق شدن یکی از طاهای چهار تمام شده این مال مازی ارق ترنه به زمان سابقه او به زمان مستقبله اگر دلالت به زمان مستقبل کنه او حالن. یا دلالت به زمان حال کنه حال یا مستقبل اونم وزن باز چی باشه؟ وضعی باشه نه اینکه که بر اثر آرزه مثلا فعل ماضی بعد از انشرفیه محناش چیه مستقبل یادتون هست نیست الله تعالی فعل ماضی در مقام و دعا محناش چیه اینها ها آرزهیه نه اولا و ذات دلالت به زمان حال یا استقبال کنه با وضع اولیگش این فهم مزاره فعل چهرین فعله میگم فعله مزاره خب فهر مزاره مختص به چیه؟ و یختص به سینه و صحفه مختص به چیه؟ سینه و صحفه است و لم لم جازمه و احداث زواعد انعیته یا حتی و یکی از زواعد چارگانه انعیته متکلم وحده اه؟ متکلم ملغه نون قائب ها و جمع محننس مزق... قایب یا و مخاطبها و مفرد تصمیه قایب محننس چی؟ تا. مشخصه انعیت یکی از این تا اگه بر سر فیل در بیاد بیان کننده موزی... مزاره بودن یا فیل میگه فقط دلالت و زمان حال میکنه یعنی میگه ازر یعنی همین الان گفتی زمانش زمان حال یعنی زمان تکلمش زمان حال زبان تکلمی به زمان او بلا فقط به زمان حال دلالت کنه فقط وضعا وزن. باز وضعا نه که مثلا من بگم یزر و الان و یزر و الان هم داره به زمان حال دلالت میکنه ولی با قید هر الان یا ل یزر و ل داره به زمان حال دلالت میکنه اما با قید لام بله حال فقط وضعن فهم رو اینو بهش میگن چی؟ فعله امر و یو عرف البته فعل امر دوتا برایش خصوصیت ده. یکی و یو عرفو به فهم امر من ها معقبون هینونه یه تاکیم امر این دوتا رو باید با هم داشته باشه علامت شناخت فعل همین. اینه اولا فعل امر از او فهمیده میشه امریت از او فهمیده میشه و ثانی هم نون تحکید هم قبول نون تحکید رو هم قبول هرچی که هم امریت رو میفهمونه و هم نون تحکید قبول میکنه بهش میگن فعله هم علامتش نه یکی از اینها ها نون تحکید خالی علامت هم نیست چون نون تحکید خالی بر سر فعل مزاره هم مثلا با استفقان باشه یا جواب قسم باشه چیه؟ در میان ها؟ خود فهمیدن معنای امر هم جز خصوصیات امر نیست چون ما فعل مزاره هم داریم که دلالت بر امر می فعل مزاره خیلی جا هستش که دلالت بر معنای امر خدایت حالا میگه و المطلقات یتربست نم به همخوصه این میگه زنهایی رو که طلاق دادن یا نم باید به خونه بشینن به اندازه سه تهر یا عادت برای خب این یه طرف بس نه فعل مزاره اما حکمش حکم فعل چیه امر حکم دستوری واجبه خبر نداده امر ایجاد کرد خیلی جاها هست که فعل امر فعل مزاره ازش معنای چی فهمیده میشه امر فهمیده میشه اما امر نیست حالا از ازین راحت تر براتون میسازم اسم فعل اسم فعل مثلا صح یعنی چی ساکت شو این الان صح فهمیده میشه ازش امر یا از فهمیده نمیشه فهمیده میشه امر اگر ما بگیم فقط ازش امر بفهمیم فعل امر است عمومی اسم فعل هم چیه شامل, شامل میشه در که اسم فعل امر نیست فعل امر نیست پس بنابراین این فقط فهم امر کفایت نمی کنن. فقط نون تحکید هم کفایت نمی کنند که ما لازم داریم دوتاش با هم است. یعنی هم عملیات را بفهماند و هم نون تحکید را قبول کنند و یعرفت فهم لعمل من همه و قبول این نونی تحکیده دونون تحکید تبسرتون یعنی مازیر که خوندی میخوایم یه بینش بده بدیم